بسم الله الرحمن الرحیم کلا سوستات مغیمی حجیم شبانه لین عزیز بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام و سيدنا محمد سیدنا صل محمد وعلى آل محمد قوم سن عارضوی قبولی طهات و عبادات با مسئولیت های همه عزیزان و سوارانی گرامی خب بحث ما رابطه با روش شناسی فرحه فردی، حکومتی و فرحه نظام حالا با ترجم به این ناهمه هنگی به ما چهار ایلا کردن با زن شد ساعت چهار برنامی کرده بود شما باشه من این تقریبا یک ساعتی که وقت بریم شدون دوستای اول برسیم خب برس از روش ما در مسیر اشتحاد با بکارگیری روش ها و قوائد در طریق استنبات احکام ما میوید تغییر می کنیم و به حل مسئله میپردازیم مسائل مختلفی که وجود داره اگر بخواییم حکمهایش تو که غالبا در نظام سنتی ما احکام است یعنی این حلال و حرام ها و باید و نماید هایی که اونجا انجام می شود اینها رو از منابع به عدلت هر تفسیلیه از منابع اگر بخواییم استمباد کنیم باید یک سری از غوائد و روش ها رو به کار بگیریم تا بتوانید حکم خداوند رو از منابع خودش استنباط کنید، استخراج کنید و کشف کنید. خب، اینجا بحث از غواهدی می که در اصول فقه در همون تعریف آوردن که علم به غواهد علم به استنباد و لحکام و اینجا مجموعه قوائد می شود به کارگیری مجموعه روش ها و قوائد برای اون استنباند. پس بحث از روش و خود قواعد یک است که بخش امیدهش اونجایی که مربوط به این استنباط استنباند برگشت می میاد در دایره این البته در اشتهان یک سری قوائد دیگر هم مس رواهل رجال و منندگو هم دخالت دارند اما عمده میشه این مجموعه قواعد کوین چه بحث از روش ها تمادارون ایده مهمه استنباط اما اگر کردن بحث از روش شناسی کنیم میشه یک نگاه یک تحلیل عبدلانی به مجموعه روش و قواعد بین روش شناسی که ما میگنیم یک نگاه تحلیلی و اقلانی به یک مجموعی از این روش ها و خواهیم داشت آنچه که در باره روش ها این روش ها مثلا موضوعش چیست غلبوهش کجاست کاربستش چگونه است؟ و هر آنچه در رابطه با روش ها اگر باییم تعمل کنیم، بحث کنیم و اونجا گفته کنیم، اینجا باب روش شناسی باز می شود. <تصفح> این بحث از کیفیت کار بست روش ها، رو، مبانی و مسائل خودها و به این می گیم روش شناسی. پس ما یک روش داریم و یک روششناسی. شناسی. اگر شما میخواد در رابطه با خود تک تک قواعدی که در درون و این علم اصول یا دیگر علوم و مانند فقه که اصول فقه ماست یه اصول استنباط احکام از علیلت هر است، از خود اون قواعد و از خود اینجه بحث از رقش ها در رابطه با کلیت این بکارگیری این قواعد و رقش ها و قلم رو و استخدام استفاده اونها بحث کنیم مشخصه بحث روش شناسی حالا ما اینجا امروز نمیخواین وارد چی بشیم؟ وارد یکایی که خود روش ها بشیم در رو کلیت روشت های مورد استفاده در طریق استنباط احکام میخوایم بحث کنیم تو بیشتر بحث ما یا تو مسیر شناسی فق یه جایی هم به خود روشها هم اشاره خواهیم کرد این از کلیت رو جلد بست این و مفاهیم حالا خود فق میرسید در فق تحاریم متعددی کردن که میدونی اون که در خود فق و موضوع فق مطرح است. و را یک رفت عنوان یک دانش که یک موضوع و محمول و طریق و مقال این یک مجموعه منظم است که دیسپلیلی باسه خودش داره و یک ساختاری برایش تعریف شده این میشه دادش دانش ریاضی، دانش کلام، دانش اصول فقر یک وقت که فقر خود مجموعه احکام را داریم بحث میباریم احکام مستنبه یعنی کتاب جوار کلام این تحیل وسیده و شکلیش سبوب فرق میگیم اون معرفت حاصل از استنباهت رو میگیم غذایهی که فقید اونها رو کشف کرده و اون معرفت رسیده یک آگاهی خاص است که در رابطه با قضای پیرامونی به این میگیم فقر کار به دانش به معقاب دانشی مجموعی که موضوع محمول طریق داره یک دانش است، به عنوان دانشی و مجموعی به او کار نداریم فقر به عنوان این احکام مستنبته حاصل به عنوان یک تراث میگیم فقر یعنی کتب فرقی، یعنی مجموعه تراث فرقی این وقت نه فرقی میگیم مجموعه غذای و احکامی که حاصل وزل جهد مشتهد در تاریخ استفاد است. یعنی ای به این معرفت میگیم فرقی که ما این روز با این طریق سبوم اشکار داریم واجه بعدی سبوم موضوع این فرقی این فقیل که این معرفت حاصله هست حاصله تراشه قرید در طریق استنباله است این موضوعش چیه آقای تحریف مکنم موضوعش فعل مکدف مشروع در تعریف موضوع که فعل مکدف هست غالبا از چه فعلی یاد میکنن کنن این سوزای کلرا زیاده نمی دست جوارهی یه افعال بیرونی ما هرچند اطلاق تعریف میگه موضوعش فعل مکنف است اما غالبا زمانی که ما خواهی توضیح بدن توضیحشون مقید میشه به افعال جوارهی اینجا این پس پیش میاد افعال جوانه اونها در قلم روی فیر هست یا نیست اطلاق بعضی کلمات میگیره اگر نگیم اطلاق اولیه انصراف داره به جواره اما بعضی تصریح کردن که افعال ای هم داخل قلمرو فقه هست و همون معنای فقه سنتیش ما تو همون غالبش بینن کار داریم و از نرسید افعال جوانهی میشه فقه العقیده عقیده، عقیده ها متعلق فقه ماست؟ های صفات متعلق فقه هست؟ میشه فقه اخلاق اونجایی که به حلال و حرام و نرسید هنوز در مرتبه چی مانده؟ حسن در مرتبه بروز در جواره نرسد در همون مرتبه چی بماند؟ در مرتبه در و نهاد انسان بماند یک صفت نفسالی انسان باشد آیا حسد تیره و و اینها در همون مرتبه که به جواره و افعال بیرونی نرسیدن متعلق احکام خمسه هستند یا خیلی یا در بحث اقائه های مثلا شما کفر و شرک بروز نکرد رفتار نرسید ارتدادی که ابراز نشد کفری که ابراز نشد در مرتبه عقید باورمان سوال آیا این جز غلبه فقه هست یا نیستی سوال اینجا خودشی بحث سی بحث های فقه روزه, روزه. چون ما آثار در فقه العقیده یا فقه اخلاق کمتر میبینیم توی روی کرده جدید پایان نام ها بعضاً حسار دارن اینها رو تولید می کننن اصطلاح چارو میگه اینجاست که بلسیم بحث خودمون با همین روی کرده فق و اداره نظام اجتماع و جامعه فق رو برزه بندی کردن که اینجا فقه فردی فقه اجتماعی فقه حکومتی و فقه نظام مدرد شد که ما موقعیم از روش شناسی و روش های این چارت ها بحث کنیم که یا با هم تفاوتی دارن یا اینجاست میرسیم به گفتبان ملحوم ما رحمت الله علی خب فقه فردی به چه درناست نا کنیم اینم با تو پرندس بگرم کاربتن ما فق را به حسب متعلقش تقسیم مندی می و به حسب اول تقسیم مندی می و اضافه که میشه اضافه به قسم است می گیم فقه تعالق فقه عبادت فقه معاملات فقه غذا فقه پزشکی فقه الحدود فقه جذا فقه خصوصی فرم اماری شهرسازی این تقسیم بندیه ها تقسیم بندیه های بسر اقواب فقریست و چیزیست که یک مجموع مسائل هم سر این ها جمع بکنیم در یک تقسیم کلام میگیم فقه عبادات معاملات سیاست. و یک تقسیم خورتر بگیم فقه صلات، فقه زکات، فقه جهاد، فقه چه تجارت، فقه روزه و ما دیگر. فقه پزشکی به مجموعه مهم مسائل تفصیل می‌کنه. ما مجموعه مسائل مرتبط با هم را کنار هم قرار آیا الزاماً در روش حل مسئله یکی از با با باب‌های با دیگر با هم فرق داره؟ یا این تقسیم بندی می خواهد بیان فرقی را به لحاظ این نکته به ما بیان کنند خیر طرف فقه مثلا خصوصی دیگه یا فقه جزا میگه این مخواه بگه فقه خصوصی یک مدر روش استنبال بیاد فقه جزا چیز دیگر نه داری به از متعلقش مجموعه مجموع حکام همسنخ باب بعضا رشته های فقری تبقیه همین رو تحسیص میشن آقا متخصص فقر بزشگی متخصص معاملات متخصص عبادات متخصص یه سری حکام مجموع غذاست مثلا اما در یک مذهبی دیگر روی این دیگه دلدست کنید دیکن زریف فهمش ما رو به حسب روی تحصیل می کنیم به حسب کرد. یعنی شما با چه نگاهی به مجموعه افواب و با چه تلقی به مجموعه افواب نگاه می کدوم افواب؟ همه افواب این دردت کنید پس نوع نگاه شما و کیفیت مواجهه شما با تمام افواب از تهاره تا دیاره است. اینجا سه رسمی شود. چهار رسمی شود. یک. خارتن ما با روی کرد فردی به مجموعه اعضاب نگاه میکنیم. چه دارد، چه حدود چه معاملات. روی کرد فردی بینیم به همین مدلی که ما میخوایم استنباد استنباده حکم و وظیفه یک فرد را در جامعه کشف کنید میبین افراد در مواجه با پدیده های خارج از خود چگونه باید رفتار کنند. انسان با خدا بگید یه جب علیکل عبادت جواب بادی. انسان با خودش میشه خودکشی کنی، اضرار به نفس کنی و دهها ده ها انسان با دیگران، خود ده ها در رابطه با زنوی دیگران، اضرار به دیگران، معامله با دیگران، نقل انتقالات، همه بیاد با دیگران. انسان با محیط اطراف، ایعای مواد و طبیعت و استفاده از منابع و معادل و انفاد و برمه، مزادی عدیس هست اون مصباح شاید که شبیه این مزمان که مثلا به طرق معاملات انسان چار به سکسید می خدا خود دیگران بوید در همه اینا من میخوام وظیفه فرد را کش کنم، استنبال کنم، بیان کنم که آقای تو میتونی برموی ازرار کنی؟ تو میتونی اگر خدا اسیان کنی تو میتونی به دیگران حقش رو بخوری سرقت کنی یا این گونه معامله کنی اونجا اون مسئله شما تبیین حکم رفتار یک انسان است در یکی از این چهار ساعت که این رفتار یک انسان در این ساعت چهوه میتونه و آنچه که در استنباز در مقام تحصیل در موضوع در مقام تحصیل در علاق و حکمت هو مؤثر است همین مسائل فردی است و مسائل فردی است چیز دیگه اونجا مجرد نیست میگ فرق متکفل این است. وظیفه دیگریم ندارد. به این روی کرد کسی که چنین تلقی از فرق دارد چنین نگاه به فرق دارد این تأثیراتی در مقام استباد میگذارد سی. ما به این روی به میگییم روی کرد نوع مواجهه شما و تللقه شما از فرق فق آمده است. که این را حل کنن به این بیگی فروی کرده فرق فرقی توش حدود هم است به حدود اومده که آبا من با به تو رو نمی به من ندوستم آبا قرارداد اجتماعی که میگن. ها میگن یا با, با, با دوست تنبیه کنم دیگه رو تنبیه کنید من می میکنم شما رو کسی ندوستم معاملت برای اینکه منافع من, من ارسوشف اون آبا منافع ارسوشف به قاده به قاد معاوضه میکنیم بیتو که حاضر به حاضر از هر خونم یه فرده نه من یه فرده هر کدوم مخواهیم جابجا کنی، به کنیم به نقی برسیم من پول دارم مخواه، جنس مخواهم جنس داری پول مخواهم با هم مقداریم کنیم بکنمات و نفع رو معیان میکنیم اقوام ما, ما دو ترنگی و گوی کرده فقه اجتماعی البته از اینجا چون که این دیگر مسائلی نیست که ازش زمان گذشته باشد هنوز در شروف تکفون است یه مقدار تلقیه ها از اینا متفاقه میشه چون فرصا محدوده من مدیریت کنم بحث اصلی برسیم به اون روش شام برسیم دیگه اینجا اختلافات در هر یک از اونها رو دیگه نمیشه بیان کرد تو هر یک از اینا باز میشه چند گیردگاه باشه استاد دیگه بیاد شاید تعریفش متفاوت باشه دو رو به جای سه خیلی‌ها استعمال می‌کنن یه اسمالیش دارم میگم منم ارزه خودم رو می‌خورم بیان دیگه و بعضی‌ها فقه رو تفسیری سنایی می‌کنن فقه فردی فقه اجتماعی حکومتی یا اجتماعی طلاس بیا به کردار اجتماعی بود حکومتی بود هر چه تراث داریم چیز فریضه است یه اختلافات که وجود داره همه با همدازو ببندیم یک روی دیگر روی کرد اجتماعیست یعنی در مجموعه موضوعاتی که موضوع حکم شده است و آنچه در او دخیل است، و در و مناتات دخیل در قوق غیر از تمعین نیازها و حاجاتی یک فرد اجتماع هم دخیل است انسان مدنی به بتر است. در درون جامعه دارد زندگی می کند غیر از مساله خودش مصالح جامعه هم مطرح است و احکام بعضا بر خلاف مساله فردیه و بر وفق مساله نوعیه اجتماعیه و شده شدن این برای من ضرر دارد برای مجموع جامعه نوع جامعه چی دارد؟ نفتره خدا اونو وزن بخواهی یه جایی نمیشه یه کوک میگذاشت به نفت یکی یک افراد در هر وضعیتی باشن اینجا تعارض مساله فرد با مساله چی میشه؟ جامعه مزرم میشه میو احکام اسلام اینطور نیست که فقط فرد را در نظر گرفته باشه. او در معامله یه فرده من یه فردم مسئله دو فرد بشه این حکام معامله نه این مساله مساله خالید از چارچوب افراد اجازه جزه نمیشه راید افراد کرد مساله کلان اجتماع است مساله اجتماع بعضا برای ما موضوع پدید میارن موضوع در لحاظ فرد و جامعه تغییر ماهیت میده به لحاظ تغییر ماهیت تغییر حق میده و در خود مناطعات احکامم اونجا خداون مبانم, مبانم، های های غسال و مفاسد احکامم در نظر گرفت اینها هم دخیل است. میگیم این گروی کرد میشه گروی دیگه که با یه گروی کرده اجتماعی برس شد نظر ما قائلیم از همین تعریف مقائلیم که تقسیم فق به فرق فردی و فرق حکومتی یا فرق فردی و تماما فردی فر اجتماعی جای حکومتی بذ دقیق نیست چرا؟ یه زیادی از احکام فقه ما اینچنین هم فقه توراست گذشته ما قطعا فردی است، قطعا روی کرده فوقه این روی کرده اجتماعی درشون وجود دارن چرا؟ چون روی اجتماعی عرض ما اینست ماهیت این مسائله اگه این خمس رو شما در نظر بگیرید حدود رو در نظر بگیرید این در ذات خمس زکاز حدود دیاز اینها ها مسائله اجتماعی نباشه مسجد نقش مسجد در نظام اداره اجتماع اینا در درون و ذاتی نکام پیمند به اجتماع خورده این دقیقت رو داریم روی کرد اجتماعی در روایه و استنباط فقه ها دخیله حالا نیست ما دونه دونه رو شاهد بیاریم تاریخ سوم یعنی استلاح سوم میشه روی کرد فقه حکومتی این روی فقه حکومتی یعنی نگاه فقی و تلقیه او به مجموعه احکام تابیات به این نگاه است که این احکام احکامی هستند برای اداره جامعه اسلامی و برای اداره حکومه مروم در کتاب البه دیگه الاسلام قبل حکومه و الاحکام و و همین چاکر به تو وجهه کنید این, این نگاه امام که تلقی و روی کرده امام به چیه؟ به فقه هست میگه اصلاق حوال حکومت اسلام کل حکومت و حکومت داری داره جامعه است. و غوانی و الاحکامو این احکامو خمسه تارت، سلاح، خوب، سهر، زکار، دیاد تا اینده حدود جهاز سول و الاحکام قوانین و قوانین حکومت داریه قوانین تنظیم اداره اجتماع است با این روی کردیسیشون در کتاب اشتاها تقدیل سفیل دوازده یهوه قانون المعاش و معاش این فقر قانون المعاش و معاد قانون زندگی دنیا آخرت است و طریق و اصول الى, الى غلوم بعد العلم به محارف و اون بعد العلم ناظر به اون رتبندیه این در درجه ارزش گذاری اول اون معارف هست بعد در و طبق بندیه علوم ما فقر رو قرار میدیم که چنین است. در سعیقه دل 21 صفحه میگه حکومت در نظر مشتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه هست در تمام زمایه زندگی بشریگه هست پس حکومت در نظر مشتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه اگه تمامی فقه بخواد به تحقوق عملی برسه بگه جاش حکومت هست حکومت فلسفه عملی و توریاست توریه تو فقه حلش کردی بشری حکومت یه فلسفه عملی تمامی فرق. اون اونم در تمام زوایای زندگی بشریت حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با معضلات اجتماعی سیاسی نظامی تابع اساس همین حکومت به این روی کرد و نوع مواجهه با, با مجموع احکام میگیم روی کرد فقه حکومتی یعنی فقه را این رسالت او اینگونه است هست فقه واقعی اداره زندگی انسان از گهواره تا گور است. با شبیه همی سخنان در کنماد موامازم رهدری هم این مطالب اونجا وجود داره بحث نظر ایمان می که همه این استقبال از این جرس که فقه و جنبه اینی و عملی پیدا کنند فقه تو کتاب ها محبوس بمانند که برای کسی ضرری ندارد بخواد با این روی کرد بین عمله بشه جوری ی تاقود نیست جوره استقبال نیست جوره ی گربنگشان آلم نیست زیر و زر نمیده حقش هم سیاسی میشه آشوراش دنبال تا قبط یزید زمان میگردن. مسادی به تاریخ این موارد رو آشورا رو فقط در تاریخ دنبال نمیکنند. یا قدرت برخورد در مسلمانان به وجود می آباید. 21، 289، که به مسلمان ها یک مدرت محاجر و برخورد و همآوردی با تمدن رقیب میده این فرق میاد هماورده پس این چه روی کرده فقه؟ حکومتی پس یک روی کرده است اینجا یه فرق و یه دیگر میگم که برای همیشه برای شما حد پس اگر فقه حکومتی گفتیم یا در عربی الفقه حول حکومی گفتیم یعنی این روی کرد، این نگاه این به بر... عبادتت رو هم به این مجموعه نگام میکنه و حکام فردی هم میگه انسان یک خلوتی دارد زندگی خصوصی دارد بعد اونجا تحمیم بشه تا بتوانه عبادت کنه بتوانه وظیفه اجتماع درست انجام بده و حکومت میگه این مجموع تفریرات فردی مسال اجتماعی، سیاسی حکومت وظیفه داره همه رو تحمیم کنه حکومت فقط وظیفهش این نیست به خونه به من ربط شما که پدرین تمام هر کاد فرزند تحت ولایت شماست. برای همه حالاتی به تربیتش رو ست که تو خدمتش هم چگونه داره با خدا رفتار می‌کنه. حکومت وظیفه تربیت است. خصوصا هم بر فردیش با این نگاه و تنظیم مسائل فردی با اجتماعی با مسائل حکومتی اینا رو به تنظیم می نگاه فقه حکومت. پس از همه اقواب جزو قلمرو روی فقه حکومتی است یه اصطلاح هم داریم فقه هل حکومت یا فارسی فقه حکومت فقه هول حکومت اون بخشی از اقواب فقه هست همان فقه غذا روی کرد نیست یعنی احکام مربوط به اداره جامعه در نسبت حاکم و مردم قروعی نیست. این مجموعه مسائلی که در درون روی کرده فرق حکومتی یا از فرق فردی فرقه نمیکنه. یه سری مسائل است مسائل تنظیم روابط حاکم با مردم آیا حاکم هم داره دو ملک مردم دخالت کند یا نه حاکم هم داره مردم شلاخ بزند یا نه به این مجموعه مسائل میگم فرق اول حکومت حالا خاصوق به این مسائل شما با نگاه فقه فردی میتونه بدین خاصوق به این مسائل و مجموعه احکام رو با نگاه فقه حکومتی میتونه بدین به این مجموعه ها میگید فرق اول حکومت بخشی از ابواب فقه است اما فقه حکومتی یک رویکرد، کرد یک نگاه یک نوع بواجه یک تلقی از رسالت دین و مجموعه احکام است و اصلش در همه به فرق ظاهر است به اون میگیم فقه حکومتی بگیم میگیم فقه حکومت فقه حل حکومت این چنده اصطلاح ببندید حالا ما بخواییم بگیم آیا روش اینو فقه ها با هم فرق دارد یا نباید. یه اصطلاح جدیداً این شعب به وجود آمد کسانی که قائل به فقه حکومتی هند تو چند سال اخیر تا پنج سال اخیر یه بحث جدیدی وجود آمد آیا مجموعه فقه حکومتی که ما این روی کرده مجموعه مسائل نگاه می کنیم این مجموع مسائل موضوع این مجموعه موضوعات جدایی از همی هستند که من با روی کرده اداره جامعه و با همین اصطلاح حکومتی رو استفاده می و همینم برای اداره جامعه کافی است یا نه در افق بالاتر وقتی موقع به فقل حکومتی و این روی کرد نوع مواجهه و تلقی از فقل شدیم اقواب فقل در یک ارتباطی با هم نظامندن منسجمن و دنبال کشت و اون ارتباطات هم باشید فرق مجموعه منسجم محتنی بر مبانی در راستای تحقق اهداف است این یک مشبکه سازی می کند میان با به این میگن حکومتی نظام ساز یا به یک به نوع ارتباط نگاه کنید میشه نظامند و به اسطلاح میکیم فرق نظام این فرق حکومتی نظام پس کسانی کالو فرق حکومتی درمتش غایلند به اینجا نمیتونم برسه یا حکومتی کافیست این در بود شمس و بود قایب هم همین فقه حکومتی رو فرمون همین هم برای داره جامعه کافیه احقا موقع نگاه حکومت اجرا کنی در درونش یک نظام است که خدا خودش تربایی کرده هست شما درست اجرا کن اون انسجام نظام خودش محقق میشه شود چیزی نیست که ما بخوایم کشفش کنیم اما قائلان به فرق نظام میگن نه ما باید به دنبال کشف نظام من و تراغذ میان احقام باشیم. این نظامندی شبک بودن، ترابط محصول تلاش فقیس تو باید کشفش کنی و استنباطش کنی بیه دقای جدید به روزی که هنوز محلو گفت روز پس این شد تلقیه حالا یه سوال اصلی ما پیش می آن آیا اگر فرق همان شد فرق فردی فقه اجتماعی فقه حکومتی فقه حکومتی نظام ساز آیا این نوع مباجه و تلقی و روی کرد در روش ها هم مؤثر است یا خیر های روش های استنباد اشتهاد تغییر می کند یا؟ نمی کند اینجور سال اصلی یه دو قاعدن که فرض ما فرضم قاعد به از این لایه های چارتانه بشیم خصوصا اون آقایشون دوگانه میکنن کنند فردی یا حکومتی یه آقا قصور یه احکام عام قواعد استظهار و استنبال از عدلده این هاست این دیگه چه فرقی داره؟ حالا روی کرده تو فردی بشه یا مزدن حکومتی بشه این قواعد قواعد عامه همه جا به کار میبرن پس در این بحث از روش و این دعوای روش شناسی میگه روش‌ها ها تغییر نمی کنن این اصول استنباد ثابت مجتنگ مگه مطلع مقایی تغییر بود این ها آن مثلا تغییر مثلا اصول عملیه تغییر بود این ها با حالا تغییر یه قواهدی هم به شما حفظ کنید در یه تلقیه دیگر میگن نه وقتی روی کرده شما به این مجموعه عوض میشود، این تغییر روی کرد موجب میشوند که در روش های شما هم اثر بذاره در عناصر دقیق در اشتحاد هم در اناسول در این فرایند اشتحاد هم ها اثر بذاره این اثر یعنی دردتر بگیم بگیم این تحصیل گذاری و اون اثر ونه محصول این تحصیل گذاری و اون اثر به وجود آمده این میگه این محصول تغییر روی کرده است چون که تو از نگاه بردی به نگاه حکومتی آمدید گفتی الاسلام هو بر حکومت ايه داره اختزااتش در خود حکم مستنبت که اثر میگذاره هیچ در روش استنباد هم ما اثر میگذاره در موضوع حکم هم, هم اثر میگذاره این مده است پس میشه آغاز بحث از تفاوت روش در فرق فردی و فرق رو اومدید تا برسید به فرق نظام که برسا خیلی ذریفتر در ریفتر هنوز یه لایهاش در حاله از ابهام است که در حال گفت و تحب و است حالا با چند تا این نمونه اینجا ذکر می‌کنیم نمونه هایی که اینجا وجود داره تا گرم نشد ما بگیم بریم کتا رم کنه به کلاس بعدی شد از با کم ساکت تر شد کمی آرام ترم شد چرا که صدا میرسه به آیون مه دیگه مهد چ... دیگه آرزوی ما خیلی کوتاه بود که <تصفيق> <تصفيق> ك... این چی دستگاه تو خاموش <تصفيق> دو دقیقه میگشن خب در اینجا پس بحث از روش و قواعد میاد روش و قواعد من در قالب چند تا مثال که پای گذار این مثال ها امام رحمت الله علی بود در غالب اونها این مسائل رو بیان میکنه خب مرحوم امام وقتی که آمد بعد انقلاب این مسائل رو مطرح کرد چند اصطلاح رو وارد ادبیات دانشی فقه رو اصول کرد و در غالب این ادبیات اشاره کرده به یک سری حدود و ضوابط روشی بخواست اونها رو به ما گوشزد کنه اولین نکته که مرحوم امام رحمت الله علی ذکر این بحث بود که که آقا ما یک فقه جواهری داریم و یک فقه پویا فقه پویا نقطه حرف تصریح ما از اون است در مقابل فقه پویا اصطلاح گزاری شده به یک معنی دقیق قبل بگیم. آن آقا فقه جواهری تعبیر خود من خود ما فقه جواهری چی؟ کتاب کده ها بود جواهر؟ مرمو محمد حسن جواهری رحمت الله هلن. این فرقی نامدار یک کتاب چلو جدی جلی از تارت تا دیان دوشت کتابی که مجموعه احکام و عدله چند غرب در خودش جمع کرد به انزبام تحلیل ایشون هنرش این بود آنچه دیگران گفتن رو هاورد اما اون نقطه ثغاعدی بود که حرفای دیگران رو این حرفه حرف جو حرف مسائل حرف کشف حرف ریاض اینه چارت کتاب بیگه تو جواهر پر رنگ. این چارت کتابی که تو جواهر پر به این بخششون ریاض این بخشش مسائل این بخشش جو یه بخشش مدارکه این جوهشت کتاب من که تو جواهر قرنگه یعنی گویا دیفارگرافی فایداراف قانوناست اما هنر فقاهت سامجواهی بود چنان اینا رو کنار هم چید و به جنگ و تناظور با یک دیگر در آورد و یک خروجی تحلیلی داد شد یک بهرسی و موشکافی جدید به یک محصول فقاهتی جدید این که این هر دیگر ها جنگ کنار مثل این روز دازو کرد نه این دازو نیست مثل کتاب مفتحال کرامه نیست که اون جمع آرابر دلست میشتر این بخش تحلیلش کمرنگ نقل خیلی بیشتر از سابده اما سابده های نقل متوسطه اما این کتاب مهم رو قبلیله و استنبال آورده با یه نگاه تحلیلی دقیق مسئله بررسی برگزه به استنبال چه بسا در خروجی حرف جدید سه انکار حرف مشروع کرده زیر باید نظر مشهور رو خالی کرده اما بجاش جاشت فتفای مشهور احتیاط کرده از چارچوب استنباط فقها خارج نشده هر چه فقها دارن دید، فهمید، درست عالمانه بجا جا نرم دقیق و بعد در حل مسئله و تحلیل به یک نتائجی یا تعیید اونا به جدیدی رسید این بررسی جامع از آرام مبانی دیگران به استفاده از تراس و ارتباط با تراس و اینکه مبانی فوقات مشتش بود همه را دقیق میدانست ولی در کنارش روزا با یک نگاه فقیهانه اینا را تحلیل کرد بررسی کرد به یک نتایج جدیدی رسید که این نتائجش خروج از چارچوب فقهی است چه بساط در حکم خارج از فتفای متداول شد اما در روش و بررسی یک فقیر مسلط با استفاده از مبانی و روش مرسوم علم را توزعه داد به قول امروز در مرز دانش حرکت کرد و یک گام رفت جلو امام میگه فقه جواهری یعنی ای فقه های جوان و و که میگه دقدره حل مساعد مستهدست را داری همانند جواهر با استفاده از خراست و ذکر مبانی و رعایت چارچوب های روشی فق در مرز دانش شرکت کنید و حل به مسئله جدید کنید نه کسی فقه های شما های میخوند اینکه اصول نیفهم اینکه روایت خوب بررسی نکرده اینکه سرد یا ازش خودش اینکه به روایت زعب درم کرده این از چارچوب استفاده فقه ها خبه فقه ها جدیدی دید میگن با جدیدی شد. فهر جدید نه این که حکم جدید فهر جدید این عدم رعایت چارچوب برسیده نگاه در حد مسئله این نگاه روشی داده میانوهایی لازمش میگه جدیدی خیلی جو فوقهاییی که فتفا میدن آنگه این فتفا تو ساختار نمی ولی ولو بعضا ما ندانیم در بیان نشت تنگناهی بر بخوریم این نمی با بایی چارچوب هایی باید تحسیل فقه جدید از توابیر به توی این تنم کنید می آمید. امام پس از جواهری یاد کرد به عنوان یک فقه کلاسیک بقوله امروزی ها که این چاشو درش رایت کنید. در مقابلش فقه پویاز این در اینه که شما جواهری هستید باید برید به سمت فقه پویاز یعنی مسائل جدید را حل کنید. یعنی بیایی خویایی داشته باشید در رفتن از مرزهای دانش حتی در روش هم شما میتوانید نوآوری کنید اما روش رو با ادبیات خود و با رعایت چارجوها و ضوابط ادنوصول نقطه دوم همه ما مشهر بحث نقش زمان و مکان در استنبال نمیده در روشی است که در نوع مواجهه و استظهار حالا در تغییر زمان و مکان چومنشت برداشت است. این برداشت بسیطه شدیه آقا موضوعات در فرایق زمان و مکان تغییر پیدا کنند. خب تو جواهر از همین تو از کسی مهند دعوانیست. اونی که مهند دعوانیست من نقطه منتخب رو میگم و که خیلیانی هم قبول دارد. یعنی تأثیر زمان و مکان تر بازفهم میده کردیست. و یک حکم. این به دون چارچوب قبال استظهار تو روش های استظهار میگه این روانی قاعده این روش توش برای شیستات باز کنید زمان و مکان فهم شما را از یک مسئله تغییر میدن تصییرات موضوعی درست است آرا و اختلاف بین ما و دیگران نیست اون که معل اختلاف بینیشون و دیگران بود این تحصیل زمان و مکان در استنباه رو که فهمهای ما فراخور زمان و مکان ما قدیم که روایتی میخوندن همه اینچنین میخوندن این می روز شون روایت میبینید چون که الاسلام و الهکومه و, و احکام قوامین الاسلام میگید رساله لازلت ال... بدای اوت بره نه رساله لازلت مرون ما مراجعه کنید میگه لازره یه قاعده فقهی نیست لازره چیست؟ یه قاعده یه حکومتی سلطانیست پیامبر برای حسن ماده نظام به اون فرد لجود چاکر؟ نخل رو قرد نگرد نخل چاکر؟ نخل رو کند رو بقدش نخل رو کنده میشه جا با جا یعنی حقیق بقای نخل را سر کرد نخل, نخل بولیت و اطلاف کرد نه نخل قلع غل نکرد غلع کرد قلع نکرد الان نخل رو می فوشن میکنن می اونجا میکنن اگه جنوبیت نخل رو جا با جا کرد یعنی او حق بقای نخل در اون زمین رو شرط کردن در محامل مزاهمت ایجاد او برای حصل ماده و اداره جامعه ایجا کرد قلعش کرد کن؟ حق بقای رو در بقلش کرد از برای که اصلا حکم یا قاعده فقهی فردی نیست، یه قاعده سلطانه اختیار حاکم. اما مواجهه عوض شد از این نحلیس یک نگاه دیگری در بیان امام آمد. یه نکته آخر هم عرض کنم، بحث احکام حکومتی به نقش مصلحت. دو چیزی بود که امام دوباره وارد از بیات و تو این روش ها از اونها باید بحث کرد. بر برمون احکام آقایم گفتن یا اولین یا ساندین اگر هو حکمی به حسب ذات موضوع تحیید شد حکم اولین اگر هو به لحاظ تو رو به عوارز بر موضوع تحیید شد و شرائط دیگر جغم ساندین به لحاظ تو رو به اکرا تغییر ضرورت اصطرار اینه احکام ساندین امام یک حکم هم هست یک حکم هست به لحاظ اخلیارات و حاکم برای تنظیم و اداره اجت پس احکام یا اولی یا ثانبی احکام یا غیر حکومی اما اولی ثانبی و یا حکومتی یعنی حاکم به لحاظ مستحت جامعه میگوید این قانون رو گمرکار این قانون هم. من و واردات و اول ور تعییم میکنم لذا احکام که حکومتی شد محیار در صدور حکومتی مسلحت هست مثل سانبی فقط ضرورت و استرار نیست مسلحت نگاه ایجابی دارد جامعه به ضرورت استرار نرسید اما مسلحت اختزام میبرد رو ریگزاری کنیم جامعه به این سمت ببرید. قبل از طور به ضرورت و استرارها بر اساس مساله یک توسعه و تضییر ایجاب بکنیم این میشه حکم دارمدار مسلحت مساحت مبنای صدور او حکم است فقط برای حاکم عکام افغانستان دید من شما مکلف به فدیه اجاره میکنید تعموم بوده ثانویه است استرلای عقد 200 بوده ولی احکام ثانوی هم میتوانند در ازای حکومت مطرح بشوند برای حاکم و حکومت و جامعه اما احکام سانبی تصدیمات به ضرورت اما حکوم حکومتی دائمدار نقش چیه؟ نقش مسلحت هست در اینجا و خود این یه مثال نهایی هم من کزدن تمام بیاین تو اصول فقر روی نیکم درگرد کنید این نقطه ضریفیست مدتیست که از اون های نظریه و نقطه سروز ذهن حویر هست نکنم ما از اصول فقر رو حالا که روی کرده ما به فقر شد حکومتی یه سری روش ها تحقیل بکنه. میشه تحصیل روی فقر حکومتی در روش استنبالی است. ما از این روش ها باید بحث کنیم. حالا اگه نظام شد یه تحقیل دیگه میگه که نرسید ما یه که اگر فقر ما من نظام منصود باز روش ها هم هم اصل اونجا هم باز باز برزنگی بله. حالا من یک مذنگه های تحصیل نگاه های حکومتی به اصول فقه چیست به خود مجمع اصول فقه نا باید من یک مثالی بزنم الان شما خیلی اوقات در احکام اصول فقه مشاهد فرمودیم که در استنباد مسئله اصولی و دعوای دو تا اصولی با هم دارن میخوان یک مسئله مثلا باب نواهی و باب مثلا تضاهم رو و مسال دیگه رو با هم حل کنن تمسکت میکنن به یه اصطلاعی زیاد شدیدید که آقا شیوه مثلا بزدن با خداون همانه تخاطب موالی و است میان نظام عبدالمولا رو بمبار یک فیشفنس در ذهن اصولی هست خیلی جایی نظام استظهار و استنباط و مسائل را عرضه می به نظام عبدال مولا و که در امزه استظهار هست نیست یه جایی اونایی که اغلایی می بینند میان تو نظام عبدال مولا امداله وجوب هست یا نیست اونایی که نگاه های اغلایی در این مسئله بر حل مسئله میان تو نظام عبدال مولا پس بسیاری از جاها در استظهار های اصولی برای حل مسئله محترین از به تلقی نظام عبدالبورم این روی کردی اصول این هست اصول که متحول مطال، مطالب است که یه تحول بنیادی در اصول دیگه چند سال یه اجزا شما کار رو حالا یه سوال اگر روی کرد ما به حکام فرض شد روی کرد تربیتی ما این چند سالی هم از مواعظمون تو فیلم فقه ما فکر تربیت وحسیم و این وقت کلاس چند جلسه یه وحس کرده که اگر روی کرده ما شد روی کرده فقه شدیم روی کرده توی یه تربیتی, یعنی تربیتی بود یعنی آن چیز خدا در مواجهه به انسان ها میخواست الگاه کنه مثل روی کرد تربیتی بود من ما تو مقدمه تفسیر تفسیر همهش مدلیشون اونجا نقش شد از ایشون که هنوز تفسیر نمیشته نشد چرا؟ چون تفسیر باید به اساس هدف قرآن نگه شده، شدن هدف قرآن که عدبی نبود تفسیر عدبی ببسیم هدف قرآن که کلام نبود تفسیر کلامی ببسیم تفاصیر روی کرده ها دارن چون هدف قرآن تربیت انسان ها بود خدا در مقام مربی امبیاء رو رود به نمانیز خدا مربی در زمین باشن و در مقام مربی به تربیت منداخت باید با این روی کرد همه آیات کلام بیست که از دهان یک مربی برای تربیت متربی خارج شد. با این نگاه آیات تفسیر کنید. حالا برگردیم اصول ما حالا نظام عبدالعولا رو برداریم. بگیریم از دست اصولی. چند تا استنباط رو می ریزه. در میان اصولی در توفق بر یک دیگر در محاجه با هم از بین بیده. روی آقا نظام میان اولا و بندگان نظام تقلیمه. هایی طلاعی مدلی میشون یه بعض چیز رو کنی انترنت دوستش گونه میاد. بعض شابه مقاله کردن. آقا نظام اسلام نظام قانونه. نظام تقلیمه. آقا نظام تقلیم شد فرض اگر این دعوه های های مختلف به جای عرب بادیه بشین مثلا تو یونان می که سالها حکومت داشتند و مجلس داشتند و شورا داشتند و تا این حرف می به اون قفل الگام میکردن، کردن خب نتیجه تنظیر به اون ذهنیت و اون جامعه چه می شود؟ حالا اگه ما گفتیم اسلام قول حکومت قوانی بهش قوانی اسلامه و این حکام اسلام گنوان حکام از حاکم به مردم گفته شد آیا به همون نظام عبد و مولا ارزه کنیم در استنبال بیدن این باید جمع کنید جایی کسی بیاییم این نظام تقنیم نظام بلایت نظام تربیت یه نظام دیگه ای رو بیایی در استنبال یه چقدر گزاره ها های رسولی و استبداله های به همه حاجبی کنن این جا, و جا جا به جا بشه نتیجه حل مسئله اصولی عوض میشه این روش ها تغییر نمی کنند خیلی هاش تغییر میکنن به خاطر عرض بر نظام عبدال مولا آقا قاعد به این شد تو آن خاص مدر مقید تو اقاب نگر اصول اگه اون بگیری خودشم اینکه برای اینو بگیری این آن میشه برای پس روش تا کجا میشه چینین بحثینی بحث از لبه شناسی اصول با روی کرده تقویبتی. که با گفتی ما تو آغاز رایش هستیم هنوز من کسی ندیدم که با این روی کرد به اصول به کنه؟ روش تنمال کنن، روش نگاه کنن و یه بات از این زامهه برنسید کنن بایدیم کجای اصول موقع ترقیه بیان بکنن برای یه بحثی هم دودور کرده اصول است که ما کدام قوائد علم اصول رو پیدا کنیم گولنگوزی ها بیاییم ماتریس علم اصول کنیم. من در ترسیم کنیم ما چند زدام؟ این هم درداغه ماست تلسیم ماتریس علم اصول ماتریس نظام شبکه‌ای مفاهیم و ترابط با هم دیگر که بازیم بیست دو محفوم میبیزن اینا رو با خطا وصل کنن میشه تا رنگ به این نظام این کیفیت شبکه مفاهین و ارتباط عناصر با هم ما تو اصول امیز ماتریس نداریم این نه دیگه مبانی هستی چیه چطور اینو با هم مرتبطن این شب شبکه شبکه مفاهین و شبکه ترابط ارتباطات ترفت و برکشتی با هم این بحثی است که اصول ما رو دوباره متبر خواهد کرد بیشتر امروز استاد بزرگوار یعنی حداقل اجمال از این مفاهیم دقیق در بحث بود که بگیم بحث از روش شناسی علم حکومتی فرافری یعنی بحث از چه موضوعی؟ خب حال این مسائل و تک تک اینها خودش دیگه با این اطلاعات انشاء شما بتوانید مقالات موجود را دیگه به راحتی مطالعه میکنید با این اطلاعاتی که مفایم در ذهن با با این که در ذهنشو شما اشارت رو نقش ارتباط با یعنی که در اینترنت هم هست چهار مختلف هم هست میشه پیدا کنید و با این مطالب بیشتر مرتبط بشید حالا اون اون نظام نظامش دیگه ما نرسیدیم که اون روی کرده فقه نظام خودش پنشیش تلقی از فقه نظام وجود داره ما هم در یک ست فقه نظام رو فقه مجموعی معرفت و قضاهایی میدانیم که مرتبطن مبتنی و در راستای اهداف برای اداره فرد و جامعه میشه تعریف ما از نظام چرا و چگونه و هریک از اون قدودات خودشی بحث خواستفادشو دارین شما در این مجموعی از اساتیدم استفاده میکنید و با این مبارس بیشتر ارتباط برقرار می‌کنید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. این این که فرمودید، در